سر نهار باز راجب او با من حرف میزد. فرنگیس کار مشکلی است باید در همان لحظه اول طوری خودت را به او نشان بدهی که تو را در واقع نامزد خودش بداند پسر باهوشیست و زود مقصود تو را ادراک میکند با خودت پول همراه داشته باش فراموش مکن که اگر به تو مزنون شدند با پول میتوانی به آسانی رف سوء زن کنی ماظب باش بیگدار به آب نزنی. میان همین آجانهای مفلوک هم ممکن است کسانی باشند که از فرط ترس نخواهند از تو که به دیدار یک زندانی سیاسی آمدهی رشوه بگیرند. ناگهان با استراب کلماتش را قد کرد. ساکت شد و باز پرسید حالا چه کار میکنی؟ میروی یک راست پیش رئیس نظمیه؟ گفتم نه من اول سعی می کنم کار را به دست همین خورده پاها درست کنم. اگر نشد پیش رئیس شهربانی می رفن. از جا برخواستم. ساعت دو چند دقیقه بعد از ظهر بود. موقع رفتم پرسید. همین الان می خواهی بروی؟ گفتم هرچه زودتر بهتر. گفت تا لباس بپوشی تصویر او هم حاضر است. زمستان سردی بود من پالتو پوست قشنگی که در فرنگ خریده بودم بر تن داشتم روسری سرخ رنگی به سرم بست و پالتو پوشیده دو مرتبه پیش او آمدم گفت بیایید نگاهش کنید و خوب قیافش را به خاطر بسپارید قیافه بنظرم آشنا آمد یاد آمد که این جوان استبیلا را جایی دیدم گفتم استاد این جوان را جایی دیده هم. پرسید کجا دیده کمی فکر کردم و گفتم این همان است که آن شب دم درستی همه دنبال شما بود؟ پرسید کدام شب؟ گفتم همان شب از نگاهش فهمیدم که مقصود مرا فهمید اما من میخواستم به روخش بکشم گفتم همان شبی که با هم کنار نهر کرج رفتیم دستش رو گذاشت روی دهان من و نگذاشت دیگر حرف بزنم من لبهایم را چم کردم و آنها را بوسیدم ماننده اقرب گزیده دستش را کنار کشید مثل اینکه که انزجاری به او دست داد رفت کنار پنجره ایستاد و به برفی که درختان را نغره پوش کرده بود نگاه کرد در اتاق را باز کردم و بیرون رفتم. دم ایوان به من رسید. زیر بازوی من را گرفت تا از روی پله های یخ زده به زمین نیفتم. موقعی که میخواست در حیات را باز کند، گفت حق با شماست. خیال کردم میخواید چند کنبه مهمت ها میز من کند. اما این جور نبود. فقط در فکر کارش بود و این ات و فداکاری مرا یک آد... جوت و فداکاری من را یک امر کاملا عادی تلقی میکرد. حق با شماست. محسن کمال شما را همان است که در سینما همراه من بود. حافظه خوبی دارید. خدا به همراهتان. یک راست به خانه رفتم. لباسی که مناسب با لباس یک نیمچه پزشک مل، ملکزاده زنجانیز به تنگ کردم و یک راست به در زندان موقت که تازه آن را تمام کرده بودند شتافتم. آخ آقای نازم خدا هیچ بدبختی را اسیر و زلیل پاسبانهای زندان نکند. دلم میخواست جزئیات ضلتی را که آن روز کشیدم شهر شرح میدادم. بدبختان وقت گذشته به علاوه میترسم که شما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 دریابم. آن روز برای نخستین بار ضلت و بدبختی مردم این کشور را که به دست صاحبان قدرت نصیب آنها می شود به چشم دیدم. دمه در زندان موقت جمعیت زیادی در انتظار بودند. مردها با صدای گرفته و کریه داد میزدند زنها جیغ میکشیدند بچه ها گریه می کردند. پاسبانها ها ناسزا میگفتند و جمعیت را از در آهنین به زور می رندند. از پشت سر پیره مردی اسکناس یک تومانی در دست داشت. دربان از بالای جمعیت آن را گرفت و پیرمرد را به زور به طرف در کشید و او را از لای در به داخل محوط زندان هل داد. مردم پاهای یکدیگر را لگت می کردند و هم دیگر می زدند. هرکس میکوشید گلیم خود را از آب بیرون بکشد. یک نظر برای من کافی بود که نمیتوانم جزو آنها بشوم. از پیرزنی که یک چاشت بندی در دستش بود پرسیدم اینجا چه خبر است؟ فهمیدم که آن روز روز ملاقات زندانیان بود. از من پرسید برای چه آمده ای؟ گفتم که من هم میخواهم نامزدم را ببینم گفت: مال شما حتما سیاسی یا مختلص است. امروز مار فقیر و بیچاره سیاسی ها اییان را امروز ملاقات نمی دهند. قیافه معیوس من دل پیرزن رو سوزاند. آن وقت به من گفت؟ من به دیدن پسرم میروم. شوفر است و آدم سیر گرفته. 5 سال محکوم شده. شما هم همراه من بیایید آنجا در داخل زندان هر کاری از دستتان براید بکنید دم در آهنین چند زن و مرد با پاسبانی ایجا رو بحث میکردند پاسبان ناسزا میگفت و باتون کشیده بود به طوری که صدای پنجاه شهست نفر آدم در آمد از سر پاسبانی که با چشم های به من نگاه میکرد پرسیدم آخر چرا نمیگذارید برویم تو؟ معدب جواب داد خانم تو زندان پر است یک دسته باید بیایند بیرون تا برای اینها جا باشد گفتم بگذارید من بروم تو یک اسکناس 5 تومانی کف دستش گذاشتم پرسید میخواهید کی را ببینید گفتم محسن کمال را گفت چه کار است گفتم دکتر است گفت چه کار کرده؟ گفتم نمیدانم. پرسید کی او را گرفته؟ گفتم پاسبانهای های شهبانی لیختند و ما نفهمیدیم کی بودند پرسید کی او را گرفتند؟ گفتم دیشب گفت اگر سیاسی باشد نمی شود؟ گفتم، شما بگذارید من بروم تو، خودم کاری می کنم. سرپاسبان راه مرا باز کرد. به دربان گفت، را بده، برگشتن انام تو هم میدن. من آمدم این حرف پنجره. جمعیت با نگاههای پر از کینه و حسد به من نگاه می کرد. یک نفر که لباس شخصی تنش بود، از من پرسید، چه کار دارید؟ سرپاسبان جای من جواب داد به ملاقات زندانی آمده از حسن آقا کارشان نداشته باش بگذار برون گفتم آقای سرپاسبان من راه را بلد نیستم بیایید راه را نشان من دهید سرپاسبان چند کلمه با معمول دمه در صحبت کرد آن وقت مأموری که لباس شخصی تنش بود گفت خانم اگر سیاسی باشد اجازه نمی دهند رو کردم به سرپاسبان و گفتم اگر بتوانی مرا را به آقای کمال برسانی انعام بهتری بهت میدهم سرپاسبان گفت خانم پیش صاحب من که کشیک نگویید است بگویید اختلاس کرده است مرد بیریخت و چرک لباسی که دم در از من حرف میپرسید دنبال ما میآمد سرپاسبان از او پرسید حسن آقا دیشب کسی را اینجا آوردند ممور جواب داد ما همیشه می آوریم دیشب هم دو آوردیم خانوم شما کی را می ملاقات کنید گفتم محسن کمال را گفت حتن از همین است که بیانیه پخش می کردن شما کی را هستید گفتم نامزدش هستم سرپاسبان تنگ به, من، به گوش من گفت باید راضیاش بکنید این بیشرف ها تا نگیرند نم پس نمیدهند اما مردک با حوشتر از سرپاسبان مینمود و برای کار خود اهمیت بیشتری قائل بود خانم شما اول باید تشریف باید اداره سیاسی اونجا باید اجازه بگیری والا نمیزن زندانی رو ملاقات کنی سرپاسمان میخواست به او آهسته حرفی بزند دیگر دل توی دلم نبود. مامور اداره سیاسی پرید به او. تو چه میگویی؟ تو که نمیفهمی زندانی هنوز خانه خودش را نشان نداده. اما سر وقتی فهمید که موضوع مهمی است به طمع افتاد. مدتی با هم آهسته حرف زدند. بالاخره مامور اداره زی سیاسی زیر با نرفت. خانم بفهمید بوی اداره سیاسی آنجا بعد از شما برسند. گفتم اصلا به شما چه؟ چه میگویید؟ امروز صبح آمدند و خانه اش را هم تشفی... تفتیش کردند مامور گفت بله اما آنجا که خانه خودش نیست آنجا که ماشین پولیکوپی دارد و برانیر را چاپ کرده است آنجا را میگویم گفتم اصلا چین چیزی نیست شما عوضی گرفته اید دیگر من ماموریت خودم را انجام یافته میدانستم اساساً دیدن فرهاد میرزا ضروری نبود. استاد از من دو جواب می‌خواست. چگونه و به چه اتهامی گرفتار شده؟ آیا اوراق اسباب را هم بردند یا نه؟ گرفتار او معلوم بود. یکی او را لو داده بوده است. یکی خیانت کرده بود. زیرا داره سیاسی از وجود پلیکوپی و اوراق دیگر در خانهاش خبر داشت و بدون اینکه این اسباب اوراق را پیدا کرده باشد یکی پس قبلا میدانست و گفته بوده است منتعا اساسی را قبلا از خانه برده بودند به همین جهت خانه فهاد میرزا را صبح امروز تفتیش کردند و چون آنجا چیزی نیافتند تصور می کنند که خانه اصلی خودش را هنوز بروز نداده است مامور اداره سیاسی گفت خدا همد که ما اشتباه میکنیم در صورت شما باید به اداره سیاسی بیایید زیرا شما نامزدش هستید حتما خانهش رو میدانید حاضر جواب گفتم البته که خانهش رو میدانم پرسید خانهش کجاست؟ قرص جواب دادم خیابان ری کوچه جلو بازارچه نایب و مأمور ممور اداره سیاسی سست شد سرپاسبان وقتی ضعف مامور اداره سیاسی را حس کرد، جرحت بیشتری یافت. دیدی بابا، دیدی داری مردم بیخود تو مخمسه می این چه نونیست که شما هم می خورید؟ تقریبا ساعت پنجیم بعد از ظهر بود. مامور اداره سیاسی گفت در هر صورت اگر بخواید اون را ملاقات کنید، بعد از اداره سیاسی اجازه بگیرید و حالا تعطیل است. بی اجازه رسمی اداره سیاسی ملاقات با زندانیان سیاسی قدقن است و هیچ کس نمی تواند بگذارد که شما حبسیتان را ببینید پرسیدم رئیس شهربانی می تواند اجازه بدهد گفت البته گفتم پس بگذارید من از زندان به او تلفن کنم پرسید مگر حضرت عجل را می گفتم بله از کسان من هستند دنبال وسیله میگشتم که از شر مأمور اداره سیاسی رها شوم. با اسم رئیس نظمی و خیشی با او را برای به این این به زبان آوردم که مأمور را از جا در کنم و ابدا چنین خیالی نداشتم که برای ملاقات فرهاد میزا که اصلا دیگر ضروری نبود به او مراجعه کنم